دردم از یار است و درمان مان نیز ام دل فدای او شد و جان نیز ام این که میگویند آن خوش ترز اوست یار ما این دارد و آن نیز ام یاد بادان آن کو به خست خون ما عهد را بشکست و پیمان نیز ام دوستان در پرده میگویم سخن گفته خواهد شد به دستان نیز هم چون سر دولت شبای وست بگذرد ایام هجران نیز هم هر دو یک فروغ روی اوست گفتمد پیدا و پنهان نیز هم اعتمادی نیست بر کار جهان بلکه بر گردون گردان نیز هم عاشق از قاضی نترسد می بیاد بلکه از یرقوی دیوان نیز هم مقتصب داند که حافظ عاشق است واصف ملک سلیمان نیز ام